أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنوندگان عزيز بعد ذلك وشما يكسلسلة درسارة وغاز تحت عنوان الدولة النبوية يا دولة نبوية و بالای از شما بعضی مسائل عمومی را بیان میکنیم ان که در درس نخست بالای مقدمات و تعریفات و بعضی اصول و قواعد ذکر میکنیم ان و بعد ازی بالای هر مساله به شکل تفصیلی میپردازیم ان در قسمت دولت نبوی یا وقتی که جای لفظ دولت یا دولت در بین می بعضی مسائل را شما در ذهن داشته باشیم که او شامل سیاست و نظام میشن یعنی سیاستداری و نظامداری و در کل نظام و نظام سیاسی یا سیاستی که در روی تحکیم شریعت و قانون رب العالمین در روی زمین تنفیذ میشه و متنفیذین از این نظام دولت داران میگن ما شما با یک نظر کوتاه میبینیم که در طول پنج سال اخیر تقریبا ما شما شاهد یک دولت نبوی دیگر هستیم دولتی که به اساس منحاج دولتی که به حساب منهجی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام ساخته بود به مو نظام یک نظام دیگر شما تجربه میکنیم. و در عین حال دیده شما دیده‌می‌تونیم که عین دولت و عین نظام تقریباً در حدود 1400 سال قبل رسول الله صلی الله علیه و وسلم بنا گذاشته بود و ما شما بالای خصوصیات دولت نبویی که رسول الله صلی الله علیه وسلم حرف میزنیم. و در کل هدف ما از دولت نبوی بالای دو عنوان میچرخه یعنی دو هدف اساسی داره در سای ما سلسله نخست از ای که از سیاست داخلی دولت اسلامی رو بیان میکنم و در سیاست داخلی دولت اسلامی ما و شما یعنی مخصوصا مخصوصا بالای از ایگه میزنیم که چه محدودیت‌ها و چه نوع ها و, و به چه شکل افراد و رایت در دولت اسلامی زندگی کنند دولت اسلامی و دولت نبوی که فعلا ما شما در زندگی می‌کنیم و دولت اسلامی و دولت نبوی که رسول الله صلی الله علیه و در زمانش بناگذاشته گذاشته بوده بینی دو چقدر تطبیقات است چه قدر است و, و برداشت‌های رایت اسلامی از دولت اسلامی چی باشه در قدم ثانی ما شما سیاست خارجی دولت نبوی را بیان می‌کنیم دولت اسلامی را که و کسانی که خارج از نظامه. اسلامی زندگی میکنن و کسایی که در تحت سیطره نظام اسلامی نیستن و کسایی که رایت دولت اسلامی سیاست ها را باید تطبیق کنیم و سیاست خارجی و داخلی دولت نبوی چیست یک حقیقت اساسی که تمام دنیا که کفار باشن یا منافقی باشن هم از یا کفار و منافقین و مرتدین و با تمام ملل و نحلشان به این باور هستند که هرگاه جهاد به نتیجه برسد و نتیجه جهاد عبارت از ایجاد یک دولت است دولت اسلامی و بعد ازو خطرای که از این ناحیه متوجه کفار است این بحث یا باورمند هستند که چونین یک جهاد با نتیجه ایجاد دولت و با خطرات اومده‌ای که متوجه کفار می‌بشه بعد سیاست و اقتصاد ایرا اینا به خود یک نوع خطر می‌دونن و یک خطر کلی است چون ما و شما اگر بریم به یک نسل قبل از ما و شما یک نسل قبل از ما و شما از دیدگاه اجتماعی و از نگاه اخلاقی و سیاسی در کل از دیدگاه عزت نفس یعنی در یک ساحه قرار داشتن که از ازتهای اجتماعی و اخلاقی و سیاسی در کل ذات نفس دورموند. دور دورم معنا یعنی که کدام عزت اقتصادی و سیاسی و کدام برداشت و کدام اقتداری که باید مسلمان ها داشته باشند ازو کاملا دور بزنن و یا به شکل یک یک برده زندگی میکنن تحت سیطره نظام‌های غربی. و این وقتی که ما شما میگیم که لاله الحمد نتایج جهاد یعنی جهاد به نتیجه رسید و و ارا دولت تأسیس شد و ما و شما میریم به طرف یک دوری که از عزت نفس برخوردار استیم و از اجتماعیت و اخلاقیت و سیاست برخوردار استیم و الله مطال چگونه یک را که مثلا از هر دیدگاه در تحت سیطره کفار قرار داشت به نتیجه جهاد رسان و نتیجه جهادشان ایجاد یک دولت بود و از چونین نتیجه و ایجاد یک دولت کفار و منافقین و تمام احزاب و ملل النحلشان در خطر هستند چرا به خاطر که از یک ناحیه که یک آدرس سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و در کل فردی بر مسلمانان جور شود و این ناحیه خطری که با کفار متوجه است را دیر باب فکرمان کرده به با خاطر باز ما میگیم که هدف خود بیان میکنیم که دولت نبوی دارای دو انوان است دو انوان بحث میشه بحث اولش که به خاطر مسلمانان است که چطور بازگشت اجتماعیت و اخلاقیت و سیاست و اقتصاد اسلامی و بعد از در کل نفس و فردیت و در بحث دوم از امتر یک آدارست کدام نو خطره هایی که متوجه کفار می باشه حال می این بالا از این مسئله اگر میزنیم که برداشت های مردم از دولت نبایی چیست بعض کسا بایی فکر میکنن که دولت ن یک دولت مثل سایر نظام طاقی باید باشه. و با این خاطر مشمص میکنیم یکفر قده ما با این مخالف هستن یکفر کمرد ما ها خامتمایی میگنن بعض تماهای دارن که یعه یعنی پیش از وقت است بعض کاف فکر میکنن که یع یعنی دولت نببی اون دولت دولتی است که مثل که دولت سورییا بوده مثل که دولت عراق بوده مثل که دولت سعودی است مثل که دولت افغانستان و پاکستان است دولت نبوی هم گواه مثلا یا یک دولت بوده باشه که ما شما تمام کشورهای که مثلا اسلامی داره این دولت نبوی بگوییم. یک برداشت غلط و سوی مردم ده ای است که ما شما می خوایم همین برداشت مردم را کنیم بعضی ها دهی باور هستند که دولت نبوی البته دولتی است که افرادش با با ابرار رابطه برقرار میکنند و دارای یک جند است یا یک نظام نظام نظامی است که اگر قرار باشه که مرکز در عراق و شام باشه یک طرف لشکر در بغداد و طرف دیگه از کس به دشمن باشه یعنی ما شما فکر کنیم که دشمنان خلافت اسلامی در اروپا بازی کسا فکر میگنن که دولت اسلامی باید تکل اشکار داشته باشه یک طرف لشکر د بغداد است که فعلا مو شما د عراق و شوم مرکز خلافت اسلامی را دا داریم و طرف دیگه باید با دشمن باشه که هر جای دشمن است بعضی کسا تو فکر میگنن که دولت اسلامی یک دولت است دولت نبی دولتی است که ته اوج طلا را بلب گرفته میشه مثلی که آب گرفته شده به این شکل این تمام برداشتای مردم است که از دولت نبوی دارن بعضی برداشتای سو برداشتای منحصر به فرد خود دارن مردم با این خاطر ما شما میخواهیم که دولت نبوی رو به مردم تعریف کنیم دولت نبوی یعنی چی به خاطر میگیم بیایید بیایید که برای یک مدت کوتاه در مورد دولت مدنی تحقیق کنیم ما و شما از دولت کدام دولتی که فیلا در عراق و شام و در خراسان قابل تطبیق است ما و شما از کدام توقعاتی که داریم که مثل کشور طاغوتی واری باشه یا مثلا یک دولت باشه که دارای چنین جنود باشه و به با شکل سهولتا داشته باشه ما شما دولت نبوی تحقیق میکنیم دولت نبوی چگونه یک دولت بود سوال میکنیم آیا دولت نبوی یا دولت مدنی یک دول امنی بود که مؤمنان کمزور در آنجا پناه بودن؟ یا اینکه یک دار جدید برای قربانی نفس و قربانی مال و یا یک دار جدید به خاطر استقامت و صبر در مقابل ترس و گرسنگی و فقر و کم شدن مال و نفس و ها بود چیگونه یک دولت ما شما تمام از اینا یک به یک میبینیم که مثلا در در دولت مدنی نفس امتحان نفس وجود داشت قربانی نفس وجود داشت قربانی مال وجود داشت و از طرف دیگر ما شما میبینید که صبر استقامت در مقابل طرز در مقابل گرسنگی در مقابل فقر و صبر استقامت در مقابل کم شدن مال در مقابل کم شدن نفس تهدید شهدا و در زمان فصلها و هم. در بابی که ما شما ذکر کردیم در این بود باید ما شما جواب های زیله تحقیق کنیم یعنی سوالا را مشمول مطرح میکنیم و جوابای زیر در درس در, سلسل در سلسل خود ما یک به یک تحقیق میکنیم آیا دولت نبوی به آن اندازه قوی و محکم بود که هیچ نو باد و فتنه دولت نبوی را در مدینه متزلزل کردن نمیتونست و یا اینکه قلبها به حلقم رسیده بود و درباره الله وجل گمانهای گناگون میکردند یعنی ما شما سعی میکنیم که باز که فکر می که دولت نبوی یک دولت و محکم و قوی بود که هیچ نوع باد و فتنه دولت نبوی را متزلزل کرده توانست یک برداشت است که ما شما داریم. یا باید ما شما تحقیق کنیم که دولت نبوی در حالت رسیده بود که در قرآن کریم می آید که زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. یعنی در حالت رسیده بودن که قلب ها به گلونا رسیده بود و مؤمنین در باره الله رب العالمین گمان های گناگون می ها شروع شده بود یعنی به این مالا که در دولت نبوی خوف بود در دولت نبوی امتحانات بود در دولت نبوی فتنه ها بود به اندازه بود که بین اصحاب حتی در سوره احضاب آیت رک ما تلاوت کردم به این اندازه یعنی مثلا مشکلات وجود باشه یا مثلا آیا فصل هایشان درست تجارت هایشان روان و تعدادشان روبه زیاد بود؟ یعنی در دولت نبوی می می‌بینید که فصل‌های فصل‌ها به این که کشتزارشان همیشه درست می‌بوده، تجارت‌هایشان همیشه روان می‌بود و تعدادشان روز به در افزایش یا اینکه در راه الله جوانان و مصافیدانشان می‌مردند. یعنی به این که جوانان و مصافیدان از اصحاب در راه الله مطال شهید می‌شدند می و فوت می و تجارت‌هایشان متوقف می‌شد و فصل‌هایشان ضایع میشد. یعنی چه گونه بودی بود که یعنی یک نظام بود که بد دهان هر از اصحابی یک قاشق طلایی بود یا یکی که به ایمان او فاصلهشان رمزی میشد شهدای مستفیدا و جوانان را میدادند و در این زمان تجارتهاشان متوقف میشد و از بین میرفت یا یکی که مدینه یک شهر مفشن آبهای آب خوب یعنی از نگاه محیط زیست و از نگاه سیحی یک شهر کاملا مطابق و میل انسان بوده یعنی آب وجود داشت، آب و هوا خوب بوده و در این زمان شهر بسیار مفشن مزین بوده وایی که دارای امراض گوناگون بود و آبهای آشامیدنی صحی وجود نداشت وایی که ما و شما می‌خویم سر این هم گپ بزنیم که بچی اندازه شهر مدینه از نگاه محیطی مطابق مایل اصحاب و در روایت‌ها ها شاء ما و شما یک به یک مسائل تحقیق میکنیم بحث دیگه است که آیا یک لشکر آماده و تندان مسلح داشت یا به این معنا که لشکر یک لشکر ضعیف و از نگاه اسباب و وسایل و احداث ضعیف بودن تمام سوائل و مسائلی را که ما شما در فوق ذکر کردیم ما شما میایم میبینیم که چرا مسائل فوق ذکر ما شما بیان میکنیم چرا بالای فصل ها گپ میزنیم چرا بالای قوی بودن و استحکام گپ میزنیم چرا بالای گپ میزنیم که آیا یک لشکر آماده و تندان مسلح داشت یا رب العالمین میگن لقد نصرکم الله ببدر و اذلهت یعنی به این معنی که مثل که رب العالمین شما در بدر نصرت داد که شما کم بودین یعنی به که یک لشکر کم و ضعیف داشتن و الله متعال در بدر اصحاب کمک کرده بعد از اون ما شما میگیم که رب العالمین در طول پنج سال گذشته ما شما را یک دولت به شکل زایل دادگی مثلا دولت عراق اسلامی بود که بعد دولت عراق اسلامی که دولت العراق الاسلامیه مشهور بود که در رهبری شیخ عمر البغدادی و بعد از او الله یعنی او دولت تقریبا از زمان شیخ محمد صب الزرقاوی رحمه الله شروع شده بود شیخ محمد صب الزرقاوی ابو عمر البغدادی رحمه الله در این بخش فعالیت کردن و دولت عراق اسلامی را بنا و فعالیت شروع شد و بعد از او دو سال متواتر دولت, دولت اسلامی در عراق و شام که دایج بود الدوله الاسلامیه فی عراق و الشام ی شروع بود و بعد از او رب العالمین یک خلافت اسلامی داده که تقریبا در بیشتر از مناطق دنیا فعلا خلافت تحسیس است و بحث سیم موشمک سل می کنیم مقامت و صبر و استقامت تحت باران توپ و جنگ های شدید در حالاتی که صبر کردن و استقامت کردن تحت باران توپ و جنگ های شدید و بالاخره رب العالمین از یک مفکوره به خلافت نظام اسلامی مدل بدل کرد و در کل میگیم که هر انداختی که بتانه ما از بین نشکرانه این ببینمون که تا ما مرا قوی کرده میره به هر اندازه که ما شما سر میکنیم که دولت نبوی بار دیگر تحسیس شده ما را از یک مفکوره به یک حقیقت جهانی مبادل شد بعد ازی ما شما در کل مثلا یک نتیجه گیری از درس میکنیم که چرا یه درس ما به چی نیت بیان کردیم گفتیم که درس ما یک درس مقدم است و در ما شما بالای موضوعات گپ میزنیم که دولتی که فعلا ما داریم که از دولت عراق اسلامی با دولت اسلامی عراق و شام و بلاخره خلافت اسلامی و بلاخره یک دوره صبر و استقامت و تحت باران توبها و احزاب و جنگای شدید ما و داریم روز به روز تحت زندگی میکنیم ما و شما دولت اینا با هم مقایسه میکنیم و دولت اینا مقایسه به این معنیه اس که فعلا کدام دولتی که ما شما تحت سیطرهش زندگی میکنیم و با دولتی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم بنا نهاده در مدینه ما و شما مقایسه میکنیم که از هر نگاه و از هر ابعاد چی بوده بود دولت آیا دولتی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم بنا نهاده بود دولتی است که فعلا ما شما از دولت سمیت توقع داریم پس به این خاطر ما میاییم بالایی مساله یک ذره نقطه نگاری میکنیم تمام کسایی که تحت سیطره دولت اسلامی زندگی میکنن یک بار رفته اصل دولت نبوی رسیل کنند که دولت نبوی که رسول الله بنا نهاده بود با کدام حالتها بود از نگاه محیطی چیگونه بود از نگاه سادی چیگونه بود از نگاه سیاسی چگونه بود کدام نوافلات اوج انجام میگرفت فصل های ازو آیا آواز میشد یا نمیشد آیا لشگری که ما شما توقع داریم که یک لشکر تا بدندان مسلح داشته باشیم یا رسول الله صلی الله علیه و با نظامش لشکر تا بدندان مسلح داشت آیا نظام او زمان بندازیی مزبوط و محکم و قوی بود که هیچ نوا فتنه و هیچ نوا بودی باعث متزلزل شدنش نمیشد به این معنی که بعضی اوقات میشد می آیا در زمان شما یعنی شاهد این بودیم که قربانی های نفس و مال از حال که ده بیشتر بوده آیا ما شاهدی نبودیم که ترس و گرسنگی و فقر دامنگیر دولت نبوی مدنی بوده آیا ما شما شاهد ازی نبودیم که کم شدن مال و نفس و فصل ها یعنی دامنگیر دولت نبوی مدنی بوده و هرگاه چنین حالات متوجه ما میشه که ما در تحت قربانی نفس و مال می وقتی که ما در امتحان ترس و گرسنگی و فقر قرار می گیریم وقتی که در امتحان کم شدن مال و ما نفس و فصلها قرار میگیریم وقتی که ما و شما از نگاه مستحکم بودن به طرف تزلزل و ضعف میریم وقتی که ما و شما در حالت قرار می‌گیریم که ترس دامنگیری ما میشه قلبای ما به حلقومای ما میرسه و زمانی میرسه که ما و شما بالای رب العالمین بدگمانی‌ها را شروع میکنیم زمانی میشه که فصلها و تجارت ما و شما متوقف میشه بالای ما تحریم اقتصادی باز میشه زمانی که ما از نگاه آشامیدنی درست تفید سفید باشیم شهرهای ما به خاطر زندگی مناسب نایب باشه وقتی که ما از نگاه سهولت‌های زندگی در امتحانات قرار میگیریم و سهولت‌های زندگی دور میشیم و زمانی که ما و شما که لشکر مسلح و آماده و از نگاه اعداد و از نگاه اسباب و وسایل نداریم، باید ما شما خسته و افسرده نشیم، بلکه باید مانند سایر برادران ما شما از مقامت و صبر استقامت کار میگیریم و باید ما شما طرف الله رب العالمین متوجه شیم و وقتی که ما و قرار میگیریم مثل که رب العالمین اصحاب کرام با رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در بدر پیروزی و نصرت داد این شکل مجاهی ندهی زمان پیروزی و نصرت. یک بخش شد که ما سیاست داخلی خدا بیان کردیم و ما مردم خدا دعوت بیمی کنیم که رجوع کنند به طرف دولت نبوی مدنی که دولت نبوی مدنی از چی بین سهولت ها برخوردار بود و دارای چگونه موحد و چگونه ساحه و چگونه سیاست بود. بعد دوم ما شما ما دشمنان خدا را هوشیار و سیاست خارجی خدا بیان میکنیم کنیم. دولت نبوی که رسول الله صلی الله علیه و سلام در چهار قدم بران نهاد که از بنای مساجد شروع کرد و بعد از بنای مساجد به طرف اخوت اسلامی از طرف اخوت اسلامی به قدم دیگر رفت بالای معاهدات از طرف موحدات رفت به طرف ایجاد یک جند اسلامی یا یک لشکر اسلامی و بعد از او به جهاد ادامه پیدا کردن و با آموز سختی ها با مشکلات با امتحانات با همه حالت بالاخره دولت نبوی بالای سلسله کره زمین خلافت قایم کرد و تقریبا در مدت 23 الا 30 سال دولت اسلامی به اندلس و به قرطبه و به قسطنطنیه رسیده بود و قسطنطنیه و فارس و روم و شام و عراق و همه زنا حتی خراسان داخل سایطره خلافت اسلامی آمده بود عین شکل امید دولت اسلامی که فعلا از نگاه هر نگاه ضعیف است مستضعف است از نگاه اعداد بدنی از نگاه حیله و خبره و سیاست جنگی و از نگاه تعداد مردم و از نگاه کثرت تجهیزات جنگی و اسباب جنگی برقرار است ولی با صبر و استقامت و با مقامت قایم آرام آرام رفته بار دیگر دولت نبوی زنده می کنه انشاءاللہ که بیرق دولت سلامی به طرف بیت المقدس به طرف قسطنطانیه به طرف فارس به طرف روم به طرف امریکا و سایر مناطق رسیده نیست و ای حقیقت است یعنی احیای مجدد دولت نبوی است و وقتی که احیای مجدد دولت نبوی بار دیگر الله لا اله الا الله و کلمه توحید به تمام مناطق نامورده می رسه. با به بیت المقدس می رسه انشاءالله. با قسطنطنیه که ترکیه امروز باشمی رسسه برومی با که آمریکا و اروپای امروز, امروز رسیدنی نیست با فارس که ایران امروز اس رسیدنی نیست و با عراق و شام الحمدلله قبلس قبل رسیده پس روی امینون ما و شما تمام مسائل و سیاست ها و اجتماعیات و اقتصادیات دولت نبوی را بیان میکنیم و در یک نوع مقایسه کلی با دولت کلینی خود در سرا ادامه میکنیم و در امروز ما در همینجا به خاتمه میرسسه بارک الله لنا و الیکم فی العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم السلام عليكم.